زن توی حیات با آنا گرم صحبت بودند. درباره سلطان و فراری دادن دختر قوتاز حرف می زدند. آنقدر مشغول بودند که متوجه آمدن اسمایل نشدند. وقتی فهمیدند که دیگر نزدیکشان بود. سلام کرد. تک و توک جواب شنید. آنا به دلسوزی گفت تو که از گرسنگی حلاک شدی خدا ذلیل کنه این سلطانی که همه را از کار زندگی انداخت. اسمایل سرش را پایین انداخته بود. میخواست برود اتاق. در همان حال صدای آشنایی او را خطاب قرار داد. سلام اسمایل. صاحب صدا را شناخت. سفورا بود. به علامت سلام و آشنایی برای تکان داد. سفورا گفت. فردا میخواییم بریم آب گرم. تو مرد ما باش. اسمایل تعجب کرد. هان؟ بعضی از زنها خندیدند. آنها به کمکش آمد، من بهت میگم، حالا برو خونه یه چیزی بخور از گرسنگی زف کردی، اسمایل وارد راه رو شد، تاریک بود و خونک، به طویل سرک کشید، گاوانتو بود و خوابیده نشخار میکرد، آن سوتر ستون طلایی آفتاب از روزنه سقف طویله روی کاهو کلش تابیده بود، موجی از مگس درون منشور نور خورشید پرواز می کردند و گاه با هم گلاویز می شدند و دوباره فاصله می گاو نگاهش می کرد. و مهربان. اسمایل صدایش کرد. بیش بیجی، بیش بیجی. حیوان کنج گاو شد. در جواب آهسته ماخ کشید. به طرفش رفت. گاو از جا بلند شد و سرش را پیش آورد و نفس عمیقی کشید. اسماعیل وسط دو شاق را خاراند. حیوان زیر دستش آرام بود. گاهی سرش را تکان می داد. احتمالا می گفت محکمتر و شاید هم منظورش این بود. کمی این طرف، آن طرف یا عقبتر جلوتر. معلوم نبود اما روی هم رفته راضی به نظر می رسید. برات عدسی گذاشتم. بیا صفره را بندازم بخور. دست به یال و گردن گاو کشید و چند ضربه آرام به او زد و از طویل بیرون آمد وارد اتاق که شد لباسهایش را در آورد و از میخ روی ستون چوبی آویزان کرد آنها سفره را انداخته بود از وقتی کرسی را جمع کرده بود حالا اتاق بزرگتر به نظر می رسید. عدسی را با کاسه گذاشت روی سفره هنوز از آن بخار بلند می شد و بویش در اتاق پیچیده بود چیزی نگذشت که سر وكلهٔ گربه پیدا شد خودش را کنار سفره رساند و باز صدایش بلند شد. خودش را به کمر اسمایل می مالید، گاهی از راست و زمانی از چپ. پیش از که خودش بخورد، تک نانی برید و برد توی عدسی و گذاشت کنار ستون چوبی. گربه با دوم علم کرده، دوید آن سو و ابتدا چند باران را بو کشید و سپس روی شکم خوابید و شروع به خوردن کرد. آنا پارچه آب را همراه لیوان آورد و گذاشت توی سفره و خودش هم نشست اسماعیل مشغول خوردم بود با دهان پر پرسید رفتن آره بعضی وقتا بعد از ظهر میان اینجا جمع میشن و با هم حرف میزنیم نمیخوری آنا نه من خیلی وقت پیش خوردم نوش جون تو بخور از سر سفره بلند شد و خودش را مشغول جابجایی ظروف چینی چیده شده روی تاخچه کرد و از اسمایل پرسید صبح کجا رفتی؟ ماجرای پرواز را برایش تعریف کرد آنا گفت پدرش به راه نمیاد. بچه تقصیری نداره. فرار کرد. معلوم نیست کجا رفت. خیلی از خونه فرار میکنه. خدا به دادش برسه. آنه این چه کاری بود که سلطان کرد؟ من دلم بیشتر از همه به مادرش سوخت. بیچاره خیلی کتک خورد. کمر سلطان بشکنه خیلی این زن و عذاب میده. خودش بیشتر از همه این بدبخت و کتک میزنه. تنلش نه کار میکنه نه زحمت میکشه. حالا هم دسته خالی میخواد زن بگیره و دختر مردممون بدبخت کنه قوتاز بیچاره حق داره دیوونه بشه دیدی آره اونجا بودم پیش سفورا و سنا وایساده بودم من تو رو دیدم غذایش رو تمام کرد خاله سفورا جدی میگفت فردا باید بریم و آره تو هم بیا یه مرد پیشمون باشه خیالمون راحته مرد دیگه ای نیست بیاد نه بابا مرد کجا بود همهشون یا تو بیابونن یا تو خونه خوابن یکیش مثل سلطان خیلی خوب میام زود باید بریم از اول صبح تا آفتاب بالا بیاد مال مرداست از اون وقت تا از آن زور نوبت زنا میشه ما همون وقت باید خودمونو برسونیم تو هم بعدش میری قاطی مردا و خودتو میشیری خوشش نمیامد با آن همه زن جایی برود حتما انگوش نما میشد مثل آن زن جماعتی که با پرواز دیدند اگر یک مرد همراهشان بود با چراغ بابا حرفش میشد. خدا خدا میکرد کرد برنامه آنها به هم بخورد و نروند تا او مجبور نشود تنها مرد آن جماعت و نگهبانشان باشد پیش خود فکر کرد حالا تا فردا صبح زیاد مانده شاید طوری شد و رفتنی نشدند دراز کشید مفاصل کمر و پشت گردنش سر و صدا کردند نفسش سنگین شد تازه فهمید که چقدر خسته است و خودش هم نمیداند. چشمایش را بست. معرکه ی سلطان پشت پلکایش رژه می رفت. اتاق عزیز و دری که مدام ضربه می خورد و می لرزید و فریادهایی که در هم می آمیختند و می پیچیدند. همان ترک در خاک می غلطید و به خود میپیچید. آخر سر باز هم سر و کله سرخان پیدا شد. با آن نیم که دوشش بود خطاب به او می گفت همیشه زیر کاسه نیم کاسه است. دستهایش را کاسه کرد. سونا کاسه ای به داد: آب خنک بود ملا توی دشت اسب میتاخت شوهای خورشید ریش و عمامه سفیدش را درخشان کرده بود گرگ پشت بوتهای درخت از گیل پنهان شده بود ملا خبر نداشت همچنان نزدیک میشد تکان خورد چشمایش را باز کرد در همین فاصله کوتاه به خواب رفته بود به دوروبر نگاه کرد لباسهایش را دید که از میخ ستون آویزان است بلند شد و با عجله آنها را پوشید و به حیات رفت. آنا مرخ ها را جابجا جا کرد. با دیدنش پرسید. کجا حالا یکم استراحت می کردی؟ برم شهر سراغ ملا با اون بر می آنا دست از کار کشید و با نگرانی نگاهش کرد و گفت. الان که خیلی دیر شده اونم پای پیاده به شب میخوری؟ پیدا می پیدا هم نشه خدا بزرگه تو راه می دیگر نماند و با عجله خداحافظی کرد و آنها را به حال خود گذاشت و به راه افتاد. از لابه‌لای درخت‌های بید راه شهر دیده می‌شد. به موازات آن حرکت کرد. نمی‌خواست از راه اصلی برود و دیده شود. مدتی بعد نزدیک رودخانه رسید. امتداد آن به نیزار و دریاچه ختم شد. خورشید پایین افتاده و نور آن از لابلای تنه درخت‌ها بر چمنزار می‌تابید. به نیزار حاشیهی دریاچه رسید. همچنان صدای حس حس مرموزی در نیزار شنیده می شود. باز هم احساس کرد کسی از میان نیها برای خود راه باز می کند و با شتاب به سمت دریاچه می رود صدای قارگار کلاقی با جیغ شاهین بر فراز دریاچه شنیده شد گویا بر سر قلم رو با هم نظام می کردند شاهین به سمت شرق بال می زد، اما کلاق رهایش نمی کرد. هر وقت فرصت می یافت با اون گلاویز می شد و در آسمان به هم می پیچیدند. از شیب ساحل بالا رفت. به جایی رسید که با آنان نشستند و غذا خوردند. چشم همچنان جاری بود. مسیرش را آهسته طی می و به دریاچه می ریخت. از کنارش گذشت و شیب را پشت سر گذاشت. از آنجا جاده خاکی دیده می شد که میان مزاره گندم و جو بی جهت پیچ و تاب می و به سمت شهر می رفت. از میان کردها و مرز میان دو مزرعه که با سنگچین نشان کرده بودند می رفت تا به جاده برسد. کمی بعد برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. گرگ را دید که مثل دیروز از شیب همان تپه بالا می رفت. پاهایش به زمین میخکوب شد و سرمایه گزنده دوباره تیره پشتش را لرزاند. نتوانست قدم از قدم بردارد و نه چشم بکند. ایستاد و نگاه کرد. گرگ از تپه راست بالا نمیرفت. بلکه مسیر کجی را انتخاب کرده بود که از میان بوته های ماهور و خلنگزار تا روی تپه کشیده شده بود. بعضی وقت می ایستاد و به او نگاه می و دوباره راهش را پیش می گرفت. به جای این که به طرفش بیاید، از او فاصله می گرفت و بالای تپه می رفت. اسمایل از یک طرف خوشحال بود، از طرف دیگر به رفتار گرگ شک کرده بود. پیش خود می گفت، چرا حمله نمی کند؟ اینجا که کسی نیست؟ یاد پرواز افتاد و حرفهایش که می برود لانه گرگ را پیدا کند به جاده رسید رد چرخهای ماشین و سم گله های گوسفند روی پوست خاک برجامانده بود فاصله دوچرخ ماشین در وسط جاده برامده بود و اطرافش جای آج که چرخها فرو رفتگی داشت که تا انتهای همین همینطور بود گرگ بالای تپ رسیده بود و حالا مثل لکه تیره و لرزانی دیده می شد از آنجا دشت را زیر نظر داشت. اسمایل به سرعت میرفت. میدانست که دیر شده و باید زودتر ملا را پیدا کند. از پشت سر و صدایی شنید. گمان کرد گرگ حمله کرده و سراسیم برگشت. چیزی به سرعت از تپه پایین میغللتید. تعجب کرد. شبیه هیچ حیوانی نبود. پایین تر که آمد سلطان را شناخت. با دوچرخش از شیب تپ پایین میآد. ایستاد و نگاهش کرد. سرعت دوچرخه رفته رفته بیشتر میشد. در آن حال فریاد میزد و می برین کنار برین کنار سلطان اومد از روی برامدگی ها می پرید سنگ ها و بوته ها را دور میزد و انوا و اقسام صدا را از گلویش بیرون می داد. از فریاد های گرفته تا های خوشحال کننده از خنده های بلند و ناله های محزون همه را پی در پی از گلویش بیرون می داد. گرد بالا نشسته بود و مثل یک تماشاچی به سلطان و دوچرخهش نگاه میکرد. چند دقیقه بعد به جاده رسید. سرعتش را کم کرد و به طرف او پا زد. وقتی نزدیک شد سرش را بلند کرد و اسماییر را دید. ایستاد و با خنده گفت دیدی چقدر تند اومدم؟ آره دیدم. خیلی تند اومدم نه؟ چند با نزدیک بود کلملق بزنم اما ویج ویج رد کردم و زمین نخوردم. دیدم. برگشت و به قد بالای تپه که از آن پایین آمده بود نگاه کرد و گفت تازه از اینجا کوتاه دیده میشه از اون بالا که نگاه میکنی این جاده قد یه دم موشه اینقدر نازک میشه از اون بالا اسماعیل پرسید حالا برای چی رفته بودی اون بالا و با دوچرخه پایین اومدی نمیگی با اون سرعت که داشتی ممکن بود کله پا میدونی چرا این کارو می‌کردم همش به خاطر نازی بود اونقدر خوشحالم که میخوام مثل ملخ پرواز کنم حالا چرا ملخ، بگو کلاق، بگو اقاب؟ نه پسر دروغ نمیتونم بگم مثل اونا نمیتونم بپرم، اما مثل ملخ چرا؟ از اینجا میپرم، اونجا میشینم از اونجا میپرم، این طرفتر میشینم، اینطوری به خاطر نازی به خاطر اونم که شده باید موازه به خودت باشی تازه، تازه میدونی، میخوام چی کار کنم؟ میخوام برم تبریز، تو مسابقه دوچرخه سواری شرکت کنم اول بشم. هم پیرهن طلایی بگیرم هم کلی پول گیرم بیاد و برگردم و با نازی عروسی کنم براش کفش و لباس بخرم. اسمایل دست گذاشت روی دو چرخ و گفت: با همین دو چرخ میخوای بری مسابقه شرکت کنی؟ آره با همین همشونو جا میذارم بازم به خاطر نازی. بعد حرفش را قطع کرد و برگشت به بالای تپه چشم دوخت و گفت: راستی پسر خاله تو هم دیدی؟ چی رو؟ و دیگه چقدرم بزرگ کافر بعد از اید این طرف ها پیدا شد. هر روزم دورو ده ما میگرده سگا ازش میترسن. آره دیدمش هنوزم اون بالاست. داره حرفای ما رو گوش میکنه. سلطان خندید. نه بابا از اونجا نمیتونه بشنوه. اسماعیل گفت خوبه که اومدی میخواستم برم شهر ما دیر شده بود. منم رسونی؟ بپر بالا بریم. پشت سر سلطان نشست و دو چرخ راه افتاد. راه کمی شیب داشت. سلطان به نفس نفس افتاد. چند کاکلی توی آسمان خال شده بودند و با آواز ممتد و بلند خود سکوت دشت را می شکستند. سلطان سنگینیش را گاهی به شانه راست میانداخت. وقتی پامی زد این سنگینی به شانه چپ منتقل میشد. شد. اقاب بزرگی در آسمان پیدا شد و با سرعت به طرف کوهها بال زد. کاکلی ها خاموش شدند. اسمایل پرسید از پرواز خبر نداری؟ زهر از دست پدرش فرار کرد و معلوم نشد کجا رفت. نه وقت نکردم. سر منم خیلی شلوغ بود. راستی حال مادرت چطوره؟ قوتاز بد جوری دست روش بلند کرد. سلطان خندید. نه ترس. مادرم خیلی جون سخته. چیزی نمیشه. منم میزنمش. یعنی چی که میزنیش؟ پسرخاله بعضی وقتا میزنمش. همیشه که نه خیلی عذیتم میکنه. اسمایل خواست حرفی بزند که صدایی از زیر چرخ بلند شد و تعادلان به هم خورد. سلطان با پاهای بلندش به زحمت توانست خودش را نگه دارد. سرش را خم کرد و به چرخ جلو نگاه کرد. آن خوابیده بود. شانس را میبینه پسر خاله ترکید. فهمیدم. خدا حافظ من خیلی عجله دارم. این را گفت و با سرعت راه را در پیش گرفت. سلطان ماند و دو چرخه پنچرش، فقط چند بار صدایش را شنید که به دوچرخش بد بییراه میگفت با گام های بلند راه را در پیش گرفته بود. نمیدانست فاصله آنجا تا شهر چقدر است و کی خواهد رسید. حوالی ظهر وقتی با پرواز روی تپه نشسته بودند این اطراف در میان مه رقیقی فرو رفته بود. حالا هم قله تپه بلند در قبار غروب گم بود. تنها سنگچین چین دشتبان مانند شبه آدمی ایستاده به طور لرزان دیده میشد. جاده از دامنه کوه میگذشت. سپس به طور ملایمان را دور میزد و پشت کوه سرازیر می شد. رفته رفته سرعتش بیشتر میشد. گامهایش را بلندتر بر می داشت. گاهی از رد چرخ راست ماشین ها و با می‌رفت. میرفت، زمان هم از رد چپ چپانها، سایه غروب سنگین شده بود. ابرهایی که تا ساعتی پیش با شاببه های سرخ و فروزانشان روی قله‌ها ها بی حرکت بودند، حالا مانند توده های تیره ای افق را بسته بودند و به حالت تهدید کننده ای آسمان را میپوشاندند بی بیان که تصمیم گرفته باشد سرعتش زیاد می شد. گویی کسی او را از پشت هل میداد و می به بجم، به تاریکی خوردی. جنبید تندتر تر رفت، به راه اصلی رسید. این یکی قدیمی بود و پهن و کفان بر اثر سنگ و کمی از زمین های اطرافش بالاتر بود. او یا این راه زمانی بروبیایی داشته و کاروانها از آن رفت آمد می کردند. خوشحال شد. این راه معتبر می توانست نشانه نزدیکی به شهر باشد. آسوده تر پیش رفت. هر آن انتظار داشت ملا را ببیند که سوار بر اسب سفیدش در آن گرگومیش قروب با شکوهی تماشایی از رو می آید و خیال او را راحت می کند. کمی بعد به جای دیدن ملا، شبه امارت تیره ای را دید که در کنار جاده بنا شده بود پاس سست کرد و ایستاد نمی توانست باور کند خانه ای را آن وقت وسط کوه و کمر دیده باشد فکر کرد دچار اشتباه شده است آنچه می دید نه امارت بود نه خانه نو بلکه سنگچین تیره ی بزرگی بود که از دور شبیه خانه به نظر می رسید. چیزی مثل ترس و تردید بر جانش چنگ انداخت بعد از اندکی مکس ناگزیر به آن سورا افتاد. جلوتر که رفت، شبه عمارت واضح‌تر دیده شد. بزرگ بود و بلندتر از خانه‌های دره در با دیوارهای سنگی و دروازه ای با تاق زردی که رو به جاده مینه نزدیک شد و مقابل دروازه رسید. به یاد کتابهای درسی تاریخش افتاد که در آنجا به کاروانسراهای متعددی اشاره شده بود که شاه عباس در نقاط مختلف ایران ساخته بود. این هم می توانست یکی از آن کاروانسراها باشد که دیگر در و دروازه‌ای برایش نگذاشته بودند و باد غروب درون آن زوزه می‌کشید. خواست عبور کند و بگذرد اما انگار مانعی سر راهش بود. احساس کرد درون آن اتاق‌های سنگی خبری است. به طرف دروازه سنگی کشیده شد. به نظرش مثل قار می‌رسید، تاریک، عمیق و خوفناک. به درون کشیده شد. دیوار سنگی دیگری مقابل خود دید مایل و مدور کمی مان تا چشمهایش به تاریکی عادت کند بوی رطوبت پیچیده بود در دیگری به فاصله چند متر از در اصلی به اتاق اندرونی امارت باز می‌شد از آنجا بوی اجاق و خاکستر بیرون میزد. داخل اندرونی شد دیگر از باد و بوران بیرون در امان بود باز هم منتظر مان تا چشمهایش به تاریکی عادت کند با دقت بیشتری نگاه کرد صدایی شنید. میخ خوب شد و تکان نخورد. گمان کرد باد خار خارقلطان خشکیده ایران تو جابجا کند یا موشهای آسوده از گربههای در دره با خیال راحت از این سوراخ به آن سوراخ سرک میکشند و به شب نشینی میروند. بار دیگر صدای مشکوک را شنید. این بار خس خس سینه ای خشک هنگام نفس کشیدن به گوشش خورد. به نظرش رسید 4 پای آنجا باشد. خم شد و دستش را روی زمین کشید. پار سنگی را پیدا کرد. آن را برداشت و به سمتی که حس می کرد صدا از آن سوی آید پرتاب کرد. سنگ به جسم نرمی خورد. به دنبال آن صدای ناهنجاری مثل ناله شنید. چیزی تکان خورد. جسم بزرگی به قواره یک گوساله به حرکت درآمد. رنگش سفید به نظر می رسید به طرف او خورناسه خوفناکی می کشید ترسید و پاهایش سوس شد. دستش را به دیواره‌ی سنگی گرفت. چش به حرکات آن شبه بود نایهان از زمین برخاست و به حیبت آدمی قد بلند در درآمد که سر تا پا در ردایی سفید پوشیده شده بود. دستهایش را به دو سمت گشود. آنقدر بزرگ به نظر می رسید که گویی از دو طرف به دیوارهای اتاق می‌خورد. در عین حال سرش به سقف سنگی امارت می می‌رسید. باز هم زوزه ناهنجاری کشید. این بار بلندتر و ترسناک‌تر. اسماعیل قافل گیر شده بود و عقب برگشت فرار کند. هنوز یک قدم بر نداشته بود که ضربه سنگینی به سرش خورد احساس کرد پرده گوش پاره شد و دیگر صدایی نشنید وقتی به هوش آمد اولین چیزی که فهمید سرما بود چشم هایش باز کرد بالای سرش آسمان پوشیده از ابر بود سرش درد می کرد و گوشهایش سوت می کشید گوی و هواپیما های گول پیکر با صداهای گوش خراش پشت سر هم از باند فرودگاه به آسمان بلند می شدند سرش را به زحمت چرخاند و به اطراف نگاه کرد شبه کاروانسرای سنگی را دید که چند متر آن طرفتر قرار داشت آهسته بلند شد و نشست کنار جاده خوابیده بود خورجین سفیدی زیر سرش گذاشته شده بود تعجب کرد دستش را روی آن کشید هنوز گرمای سرش در آن بود با دقت به دور نگاه کرد همه جا تاریک بود تنها صدای باد می آمد خواست از آنجا بلند شود اما درد توی سرش پیچید و از آنجا به پایین سرازیر شد دوباره نشست و از شدت درد چند نفس عمیق کشید صدای ای از طرف امارت سنگی شنید اول گمان کرد این صدا توی سرش میپیچد میخواست هرچه زودتر بداند چه اتفاقی برایش افتاده چه کسی او را از اتاق اندرونی امارت بیرون آورده و این سوی جاده خوابانده صدای قدمهایی را شنید های جاده زیر پایش قرج قرج میکردند نه توان بلند شدن داشت و نه توان گریز یا حتی دفاع احساس کرد سرش چند برابر سنگین شده و روی گردنش سنگینی میکند با دو دست آن را گرفت و محکم نگه داشت صدایی شنید کسی با او حرف میزد، حالش را میپرسید. بهتر شدی صدا را آشنا یافت خب الحمدلله مثل اینکه بهتری ملا بالای سرش ایستاده بود گمان نمیکرد در چنین شرایطی او را ببیند ناگهان رد با صدای مهیبی قرید و برقی خیره کننده به سرعت سینه ابرهای تیره را درید و مغرب و مشرق آسمان را به هم دوخت. در پی آن باران بهاری باریدن گرفت. ملا خم شد و دستش را روی پیشانه او گذاشت و گفت تبت هم پایین اومده. اسماعیل آب دهانش را سخت فرو داد و پرسید من چرا اینجام؟ ملا جواب داد از من می پرسی من نمیدونم تو چرا اینجایی. فکر کن ببین برای چی اومده بودی؟ فکر کرد. یادش آمد. گرگ. سلطان. دوچرخه. دنبال شما اومدم نگران شدم فکر کردم میخواد اتفاقی براتون بیفته. ملا دست اسماعیل را گرفت و آهسته از زمین بلندش کرد. خورجین را برداشت و گفت: وقتی رسیدم اینجا دیدم افتادی جلو کارپانسرا. دو نفرم به طرف بنفش در فرار میکردند. تاختم پشت سرشون یکیشون قره‌کشی بود اون یکی رو نشناختم. رفت تو تاریکی گم شد. همراه ملا از عرض جاده گذشت. باران میبارید. چرا این کارو با من کردن؟ احتمالا منظور اونا من بودم. می‌خواستم با اون شمایل به جلو اسب و حیوان رم بدن تا اتفاقی برای من بیفته. اما تو اومدی و نقشه اونا رو به هم زدی.